تغییرات فیزیولوژیکی که در دوران بارداری اتفاق می‌افته تحت تاثیر تغییرات هورمونی و هورمون‌های استروژن، پروژسترون و لکسین اتفاق می‌افته. به خاطر همین شناخت این تغییرات قبل از شروع تمرینات ورزشی خیلی خیلی مهم هستش. در ابتدا میخوام در رابطه با تغییراتی که در سیستم تنفسی مادر باردار اتفاق می‌افته صحبت بکنم. این تغییرات هم فیزیولوژیک هستند و هم مکانیکی. به دنبال بارداری، متابولیسم پایی بدن مادر باردار افزایش پیدا میکنه و همین باعث میشه که تقاضای بدن برای اکسیژن بیشتر بشه. به طوری که نزدیک به ترم و در اواخر بارداری میزان نیاز به اکسیژن به طور میانگین نسبت به قبل از بارداری 20% افزایش پیدا میکنه. به همین ترتیب هم میزان دیوسید کربن در هوای بازدمی مادر افزایش پیدا میکنه بالا رفتن سطح پروژسترون باعث میشه که سرعت تنفس مادر باردار به مقدار خیلی کمی افزایش پیدا بکنه و به این ترتیب میزان دیوسید کربن در خون مادر حدود 25 درصد کم میشه از اونجایی که مرکز تنفس در مغز نسبت به سطوح دی اکسید خیلی خیلی حساسه به خاطر همین سرعت تنفس مادر باردار به دنبال فعالیت بیشتر میشه و به اصطلاح خودشون نفس کم میارن مادرای باردار اغلب از تنفس سخت و مشکل حتی تو اون اوایل بارداری هم شکایت دارن هوای جاری در هر تنفس در دوران بارداری حدود چهل درصد افزایش پیدا میکنه و تهویه کیسه های هوا زیاد میشه و باقی مانده هوا به دنبال دم در ریه های مادر کاهش پیدا میکنه علاوه بر اینکه سرعت تنفس در بارداری بیشتر میشه امکان این هم وجود داره که تعداد تنفس در زنان باردار مقداری بیشتر بشه و این افسایش در زمان زایمان خیلی بیشتر هستش و تنفس های مادر هم ارادی و هم غیر ارادی ممکن هستش که در هنگام زایمان بیشتر بشه و همین افسایش اثرات تنفس باعث میشه که سطح دی اکسید کربن در خون مادر کاهش پیدا بکنه و مادر احساس سباکی سر، سوزش در لب ها و دست و پاها، عرق زیاد و احساس استراب و آشفتگی بکنه عدم هوشیاری از علامتهای دیررس کاهش دیوید کربن در خون مادر هستش و این تونتون نفس کشیدن مادر میتونه حتی روی جنینش هم تأثیر بذاره. به خاطر همین هستش که به مادرها باید آموزش بدیم که در روند زایمان چه جوری نفس بکشن تا این مشکلات براشون پیش نیاد. یکی از توصیه‌هایی که به مادرها می‌کنیم وقتی که دارن تونتون تند نفس می‌کشن در روند ما برای اینکه سطح دیوکسید کربن در خونشون کاهش پیدا نکنه یه پاکت کاغذی بهشون می‌دیم و می‌گیم که چندین بار توی اون پاکت کاغذی نفس بکشه این کار باعث میشه که آرام آرام سطح گازهای خون به حد طبیعی خودشون برسه در دوران بارداری به دلیل اینکه رحم بزرگ میشه به دیافراگم فشار وارد میکنه و این فشار به دیافراگم باعث میشه که حجم قفسه سینه مادر کم بشه و همین زمینه رو برای ایجاد اشکال در تنفس مادر ایجاد میکنه و در اواخر بارداری این مشکلات بیشتر میشه چون امکان این وجود داره که رحم تا 4 سانتی متر دیافراگم رو از محل طبیعی خودش بالاتر ببره و این باعث بشه که ناحتی و درد در حاشیه‌های های قددامی دنده ها پایینی مادر احساس بشه و مادر شکایت از درد سینه و پشت به خصوص در پایین دنده ها داشته باشه و اگر فشار بیشتر بشه و رحم خیلی بزرگ بشه ممکن هستش که مادر در تنفس مشکل پیدا بکنه و خیلی سخت نفس بکشه که معمولا تو بعضی از مادرها در اواخر بارداری یکی از شکایتهای شایع هستش